در مورد مسئله امام زمان خب شما ها خوب کار کردید و تلاش کردید و اخاته به همه جوانه به قضیه دارید اونچه مهم است این است که اعتقاد به امام زمان یک بخشی از جهانبینی عدیانه یعنی ادیان الهی همچنانی که در جهانبینی عمومی خودشون نسبت به عالم آدم منشأ آفرینش منتهای سیر حیات بشر یعنی درباره مبدأ و ماد نظر میدن یکی از بخش های این جهانبینی این مجموعه عظیمی که زیربنای همه افکار و تعملات و احکام و قوانین و مقررات ادیان هست بخشی از این جهان بینی عبارت است از مسئله نهایت سیر کاروان بشر در این دنیا مسئله اون دنیا و اون نشعه مسئله دیگری است مسئله آخرت است یک مسئله این است که بشریت به کجا دارد میرود اگر ما جامعه بشری را در طول تاریخ به کاروانی تشبیه کنیم که در یک مسیری رو میره این سوال مطرح است که این کاروان به کجا میره مقصد این کاروان کجاست منتهى الیه این سیر کجاست یه سوال جدی است این باید در هر جهان بینی پاسخ داده بشه ادیان به این پاسخ دادن نهله های فکری غیر دینی پاسخشون یکسان نیست در این زمینه لیکن پاسخ ادیان تقریبا به این سوال یکسانه همه معتقدن تا اونجایی که میشناسیم از ادیان الهی و ادیانی که رونویسی از ادیان الهی ولو ولی خودشون هم الهی نباشند، اما پیداست اصول و قواعد کار رو از ادیان الهی گرفتن در این مجموعه ادیان انسان مشاهده میکنه یک پاسخ مشخصی است معتقدند که این کاروان در پایان در آخر راه به یک منزلگاه مطلوب و دلگشا و دلنشین خواهد رسید خصوصیت عمده این مقصد هم عدالت است عدالت خواسته عمومی بشریت از اول تا امروز و تا آخر